روزی، روزگاری، پادشا و ملکه زندگی میکردن که همدیگر رو خیلی دوست داشتند. اما اگه پسر یا دختر کوچولویم هم داشتن که باهاش بازی کنن، خوشبختیشون کاملتر میشد. اونا هیچوقت در این مورد حرفی نمیزدن و همیشه وانمود میکردن که آرزوی توی دنیا ندارن. اما گاهی وقتا که به بچه های سایر مردم نگاه میکردن، چهرهشون توی هم میرفت و درباریان و ملازمانشون ملاز روزی ملکه تنها در کنار آبشاری که از بین سخره پارک بزرگ متصل به قطر جریان داشت نشسته بود. اون بیش از پیش احساس بدبختی می کرد و ندیمه هاش رو مرخص کرده بود تا کسی شاهد اندوهش نباشه. یک دفعه صدای خشخشی رو در حوضچه پایین آبشار شنید و وقتی که نگاه کرد خرچنگ بزرگی رو دید که از سنگی که کنارش بود بالا می اومد. خرچنگ گفت ملکه ی بزرگ اینجا اومدم تا بهت بگم که آرزو که دلت به زودی برآورده میشه اما اول باید به من اجازه بدی تو رو به قصر پریان هدایت کنم که با وجود دشوار بودن هرگز چشمه های هیچ موجود فانی بهش نیفتاده چون ابرهای متراکمی اون رو احاطه کردن اگه به من اعتماد کنی اونجا بیشتر میفهمی. ملکه هرگز نشنیده بود که حیوانی حرف بزنه و از تعجب خوشکش زده بود با این حال به قدری مجزوب سخنان خرچنگ شد که لبخند شیری زد و دستش رو جلو برد. کسی دستش رو گرفت اما نه اون خرچنگی که لحظه پیش اونجا بود بلکه پیرزن کوچکی که لباس باشکوهی به رنگ سفید و زرشگی داشت و روبان سبزی به موهای خاکستریش سرش بسته بود. از همه عجیبتر این که حتی یک قطر آب از لباساش نمی چکید. پیرزن به آرامی مسیر رو, رو که ملکه قبلا بارها طی کرده بود در پیش گرفت. اما این بار مسیر به قدری متفاوت بود که ملکه نمیتونست باور کنه که همون مسیره. به جای اینکه مجبور باشه راه خودش رو در بین خار و خاشاک باز کنه، گلهای روز و یاز اطراف سرش آویزون بودن و زمین زیر پاش مالامال از گلهای بنفشه بود. درختان پرتقال به قدری بلند و ستبر بودند که حتی در نیمروز گرمای خورشید آزاردهنده نبود. در انتهای مسیر نور خیره کننده ای می میدرخشید که ملکه مجبور شد دستهاش رو سایبون چشمهاش بکنه و از لابلای انگشتهاش به اون سمت نگاه کنه. ملکه رو به رانماش کرد و پرسید: اون چی میتونه باشه؟ پیرزن جواب داد: اون قصر پریاس و بعضی از اونها دارن به پیشواز ما میان. در همین موقع دروازه ها باز شد و شش پری جلو اومدند هر کدوم از اینا گلی از جنس سنگ های گرانبها در دست داشتند این گل ها به قدری شبیه گل های حقیقی بود که تا اون رو لمس نمی کردی نمیتونستی تفاوت اونها رو بفهمی پریا گفتند خانم نمیدونیم چطور از این اطمینانی که شما به ما داشتین تشکر کنیم اما با کمال خوشوقتی به شما میگیم که به زودی صاحب دختر کوچولویی میشید ملکه به قدری از این خبر خوشحال شد که چیزی نمونده بود از شادی ضعف کنه. اما وقتی که قادر به صحبت شد با تمام وجود از پریان به خاطر این حدیهی که نویدش رو داده بودن قدردانی کرد. اون گفت دیگه نباید بیشتر از این اینجا بمونم چون شوهرم فکر میکنه یا فرار کردم یا جانوری وحشی منو خورده. در مدت زمان کوتاهی پیشگویی پریان به وقوع پیوست و دختر کوچولویی در قصد متولد شد پادشاه و ملکه بسیار شادمان شدند و طفل را دزیره که به مفهوم آرزو شده است نامیدند چون پنج سال آرزوی تولد اون را داشتند اول ملکه به هیچ چیز جز اسباب بازی جدیدش فکر نمیکرد اما بعد به یاد آورد که پریان اون را براش فرستادند به همین خاطر به ندیمه هاش گفت که حلقه گل جواهر نشانی رو که پریان در قصر بهش داده بودن بیارن. ملکه حلگر رو در دست گرفت و نامش رو صدا زد و در مقابل هر یک از پریان پیش روش ظاهر شدند. اما همونطور که بدبختانه بیشتر وقتها اتفاق میفته اون پری که ملکه بیش از همه بهش مدیون بود یعنی خرشنگ رو از یاد برد و با این کار مثل بچه دیگری که در موردشون شنیدید، شانسی به وجود اومد و هر حال در اون زمان شادی و سرور در قصر حک فرما بود همه افرادی که داخل قصر بودن به سمت پنجره ها دویدن تا کالسکه های پریان رو که با هم تفاوت داشتند نگاه کنند. یکی از اونا کالسکه ای از جنس آب داشت که کبوترهای سفید اون رو می یکی دیگه توی کالسکه ای که از جنس آج بود لمیده بود و ده تا کلاق سیاه اون رو می و بقیه پریان از چوبهای نادر یا صدفهای رنگارنگ برای کالسکشون استفاده کرده بودند که توتیهای سرخ و آبی، تاووسهای با دمهای بلند و زیبا یا مرغ سبز سبزرنگ به جای اسب اونها رو می‌کشیدند. از این کالسکه ها فقط برای مراسم رسمی استفاده می شود. چون وقتی که به جنگ میرفتند، رفتن، اجداهای بالدار، مارهای آتشین، شیر یا پلنگ جای این پرندگان زیبا رو میگرفتند. پریان وارد اتاق ملکه شدند و به دنبال اونها کوتوله هایی اومدند که هدایای اونها رو می آوردن و مغرورتر از خانمهاشون هاشون بودند هدایای اونها یکی بعد از دیگری روی زمین گذاشته شد هیچ کس تا به حال چنین چیزهای زیبایی ندیده بود همه نو پوشاک و اسباب بازی بچه اونجا موجود بود و علاوه بر اون هدایایی بیشتر و گرانبهاتری برای دخترک داشتند که تنها بچههایی که مادرخونده‌شون پری هست میتونن اونها رو داشته باشن. اونها همگی دور پشتیهای صورتی رنگی که نوزاد روی اون خوابیده بود جمع شده بودند که یک دفعه بین اونها و خورشید افتاد و باد سردی توی اتاق وزید. همه نگاه کردند و دیدن این خرچنگ پری بود که از شدت خشم قدش به سقف رسیده بود. اون با صدای بسیار بلندی که ملکه رو از ترس به لرز اندوق فریاد زد؟ پس منو فراموش کردی کی بود که تو رو در موقع ناراحتی آروم کرد؟ کی تو رو پیش پریان هدایت کرد؟ کی تو رو سیح و سالم دوباره به خونت بازگردوند؟ اما منو نادیده گرفتی و اینها رو که در مقایسه با من هیچ کاری انجام ندادند مورد محبت و سپاس قرار دادی. ملکه که تقریبا از وحشت زبونش بند اومده بود؟ بیهوده سعی کرد تا توضیحی یا بحانهی پیدا کنه اما دستاویزی وجود نداشت اون تنها میتونست به اشتباه خودش اعتراف و طلبه بخشش کنه پریانم نهایت سعی خودشون رو کردن تا از خشم خواهرشون کم کنند. و از اونجایی که می دونستن اون مثل بسیاری از مردم عادی که پری نیستند بسیار مقروره بهش التماس کردند که لباس خرچنگ رو کنار بزنه و به شکل واقعی خودش که اونها همیشه میدیدند و بسیار زیبا بود در بیاد مدتی پری خشمگین به هیچ حرفی گوش نکرد اما بالاخره چاپروسی ها شروع به تاثیر کرد و اون لباس و پوسته خرچنگ رو انداخت و به شکل واقعی خودش در اومد و کمی از بیرحمیش کم شد اون گفت باشه، فکر خودم رو که کشتن شهازاد خانم بود عملی نمی کنن. اما در عین حال اون باید مثل بسیاری از بچه های دیگه به خاطر اشتباه مادرش مجازات بشه. مجازاتی که براش در نظر گرفتم اینه که اگر تا قبل از جشن تولد پانزده سالگیش نور خورشید رو ببینه به تلخی از اون پشیمون میشه که شاید حتی موجب مرگش بشه. با گفتن این حرفها اون از همون پنجره که وارد اتاق شده بود خارج شد. در همین موقع پریان ملکی گریان رو دلداری دادند و بهترین راهای های بعد از شاهزاده خانم رو در دوران کودکی به ملکه توصیه کردند. بعد از نیم ساعت اونها به تصمیم نهایی رسیدند. به امر پریان قصر زیبایی ساخته شد که در نزدیکی قصر پادشاه و ملکه بود. اما با وجود همه قصرهای دنیایی که داشتن تفاوت داشت. چون پنجره‌ای نداشت و فقط دری به زیر زمین باز میشد. با این حال با توجه به اینکه در داخل قصر جای روشنایی روز بسیار خالی بود شامهای بسیار زیادی در دیوارها میسوختند که خیلی درخشان بودند تا این جای داستان این شاهزاده خانوم هم مثل قصه بسیاری از شاهزاده خانوم ها که در موردشون شنیدید زندگی کرد اما وقتی که پایان دوره اسارتش نزدیک شد وقت اون دوباره برگشت. پریان تقریباً 15 سال از شاهزاده خانم نگهداری کردند. اون رو سرگرم کردند و تعلیم دادند تا وقتی که به دنیای بیرون برمی‌گرده چیزی از دختران سایر پادشاهان در زیبایی و دانایی کم نداشته باشه. اونها همگی از صمیم قلب دوستش داشتند، اما پری لاله اون رو از همه بیشتر دوست داشت. و با نزدیک شدن جشن تولد پانزده سالگی شاهزاده خانم پری دوچار وحشت شد که مبادا اتفاق بدی یا حادثهی براش بیفته. پری لاله به ملکی گفت اون رو از پیش چشما دور نکن. زمناً بگو تصویرش رو نقاشی کنن و طبق آداب و رسوم به دربارهای همسایه بفرستن تا پادشاهان ببینن که او زیباتر از سایر شهزاد خانم هاست و اون رو برای پسرشون خاصگاری کنند کنن. این کار انجام شد و همونطور که پری پیشگویی کرده بود همه یه شاهزاده های جوان عاشق اون عکس شدند اما آخرین نفری که عکس رو دید دیگه نتونست به چیزی دیگری فکر کنه و اجازه نداد عکس رو از اتاقش بردارن و تمام روزها در اتاقش به عکس خیری می شود. پدر اون پادشاه از تغییری که در پسرش اتفاق افتاده بود کاملا متعجب بود آخه قبلا شاهزاده به طور کلی تمام اوقات خودش رو به شکار و بازی قوش ها میگذارند. با شنیدن صحبت دو نفر از درباریان در مورد وحشتی که از دیوانه شدن و گرفتگی چهرهی شاهزاده داشتند، نگرانی پادشاه زیادتر شد. پادشاه بدون تلف کردن وقت پیش پسرش رفت. به محض ورود اون به اتاق شاهزاده، مرد جوان خودش رو به پاهای پدرش انداخت و گفت: شما منو با دختری نامزد کردید که هرگز نمیتونم دوستش داشته باشم اما اگه حاضر به برهم زدن نامزدی نشید و از شاهزاده دزیر برای من خواستکاری نکنید من از شدت بدبختی میمیرم این کلمات پادشاه رو خیلی ناراحت کرد چون احساس کرد که با برهم زدن عروسی که مقدمات اون رو فراهم کرده بود مطمئنا مردم کشورش رو درگیر جنگی طولانی و خونین میکنه و همین دلیل بدون اینکه جوابی بده از اونجا خارج شد امید داشت که پسرش بعد از گذشت چند روز بر سر عقل بیاد اما وضعیت شاهزاده چنان به سرعت بد شد که پادشاه با ناامیدی قول داد فوراً سفیری را پیش پدر دزیر بفرسته این خبر در یک آن تمام بیماری های مرد جما رو درمان کرد و اون شروع به برنامهریزی برای همه جزئیات ازدواج مثل لباس عروسی اسبها و کالسکایی که باید مهمانان و فرستاده ها رو میبردن و بقیه کارها کرد تا همه چیز در نهایت شکوه و زیبایی باشه اون آرزو میکرد که با لباس مبدل یک پیک خودش هم همراه ها بره اما پادشاه این اجازه رو نمیداد و شاهزاده باید به این راضی میشد که همه کشور رو بگرده تا زیباترین و نادرترین چیزها رو برای شاهزاده خانم بفرسته در واقع اون زمانی به قصر رسید که فرستاده پادشاه با تصویر اون که مخفیانه توسط نقاش دربار کشیده شده بود آزمه سفر شد این نهایت آرزوی پادشاه و ملکه بود که دخترشون با چنین خانواده بزرگ و قدرتمندی وصلت کنه و به خوبی از فرستاده استقبال کردند اونها حتی میخواستن شاهزاده خانم دزیره رو بهش نشون بدن. اما پریلاله که میترسید اتفاق شومی بیفته مانع این کار شد و گفت به فرستاده بگید جشن عروسی وقتی که اون پانزده ساله شد برگزار خواهد شد وگرنه اتفاق شومی برای این دختر رخ میده به همین دلیل وقتی فرستاده که بکاسیگ نام داشت همراه کالسکه خودش به اونجا رفت و رسما از شاهزاده خانم دزیره برای پسر اربابش کاری کرد پادشاه پاسخ داد که از این پیشنهاد بسیار مفتخره و با خوشوقتی رضایت میده اما هیچکس کس نمیتونه شاهزاده خانم رو تا جشن تولد 15 سالگیش ببینه چون تلسمی رو که یک پری کینتوس برای اون وقتی که در گهواره بوده بسته فقط در زمان باطل میشه سفیر بسیار متعجب و نومید شد اما اونقدر در مورد پریان میدونست که جرئت نمیکرد از اونها نافرمانی کنه بنابراین فقط عکس شاهزاده رو به ملکه تقدیم کرد و اون هم بدون درنگ عکس رو به شاهزاده خانم رسوند به محض اینکه شاهزاده خانم عکس رو توی دستش گرفت انگار تصویر به حرف در اومد انگار که بهش آموزش داده بودن که چنین کنه و چنان تمجید و تحسین دلپذیر و زیبایی ازش کرد که دختر از شادی در پوست خودش نمی گنجید. ملکه خندکنان پرسید آیا میتونی چنین جوانی رو به عنوان همسر آغنده بپذیریم دزیره که از مدت ها پیش مأموریت سفیر رو حد زده بود جواب داد بله انگار که همه چیز رو در مورد اون میدونم ملکه در حالی که دستور میداد هدایای شاهزاده رو بیارن گفت خب اون تا سه ماه دیگه همسر تو میشه. شاهزاده خانم از هدایا خیلی خوشحال شد، اما ملکه متوجه شد که هر چند وقت یک بار چشم‌های شاهزاده خانم از نرمترین ابریشمها و درخشانترین جواهرات به سمت تصویر شاهزاده منحرف میشه. سفیر که میدید امیدی برای دیدن شاهزاده خانم وجود نداره، اجازه مرخصی گرفت و عازم دربار سرزمین خودش شد. اما در این هنگام مشکل جدیدی به وجود اومد با اینکه شاهزاده از اینکه دزیره حتما عروسش خواهد شد خوشحال بود اما به خاطر اینکه برخلاف انتظارش شاهزاده خانوم اجازه پیدا نکرده بود که همراه بکاسیک به اونجا بیاد خیلی ناامید شد و از اونجایی که هرگز چیزی ازش دریغ نشده بود و به اون مهار کردن احساساتش رو یاد نداده بودن مثل قبل بیمار شد غذا نمیخورد و به تفریح نمی رفت و تمام روز رو روی پشتی ها دراز میکشید و به تصویر شاهزاده خانم خیری میشد تنها حرف این پسر لوس این بود اگه برای عروسی کردن با شاهزاده خانم سه ماه منتظر بمونم میمیرم بالاخره پادشاه نومیدان تصمیم گرفت دوباره سفیری رو پیش پدر دزیره بفرسته تا از اون خواهش کنه جشن عروسی رو فورا برگزار کنن پادشاه در نامش اضافه کرد مایل بودم حضوری به خدمت برسم اما کهولت سن و بیماری به من اجازه سفر رو نمیده به هر حال فرستاده من دستور داره که با تمام پیشنهادات شما موافقت کنم. بکاسیک به محض ورود به قصر دلیل اشتیاق و برخورد پادشاه رو به وضعیت ارباب جوانش یعنی شاهزاده نسبت داد و خواهش کرد که در این مورد با شاهزاده خانم مشورت بشه ملکه به برج مرمری رفت تا خبر وضعیت قمانگیز شاهزاده را به دخترش بده دزیره با شنیدن خبر ضعف کرد اما خیلی زود به خودش اومد و شروع به کشیدن ای کرد که بتونه بدون اونکه دچار سرنوشت شومی که پری بدجنس براش رقم زده بود بشه پیش پادشاه بره بالاخره با شادی گفت آهان بگید ای بسازن که هیچ نوری به داخلش نفوذ نکنه و اون رو به اتاق من بیارید من وارد اون میشم و ما میتونیم به سرعت در طول شب سفر کنیم و پیش از طلوع خورشید به قصر شاهزاده برسیم. در اونجا میتونم در اتاقی در زیر زمین که نوری بهش نمیتابه بمونم. ملکه در حالی که اونو در آغوش میکشید داد زد تو چقدر باهوشی؟ ملکه شتابان پیش پادشاه رفت. به کاستیک تعظیم میکرد و گفت شاهزاده ما همسر شایسته‌ای خواهد داشت اما من باید فوراً این خبر رو ببرم و اتاق زیرزمین رو برای شاهزاده خانم آماده کنم به این ترتیب اون اجازه مرخصی گرفت در طی چند روز کالسکه درخواستی شاهزاده خانم آماده شد این کالسکه شامل پارچه مخمل سبزی بود که شاخه‌های بزرگ طلایی روی اون پخش شده بود و حاشیه اون با پارچه نقره‌ای و گلهای صورتی تزیین شده بود البته هیچ پنجره‌ای در این کالسکی وجود نداشت اما پریلاله که مورد مشورت قرار گرفته بود ترتیبی داده بود که نور ملایمی که هیچ کس منبع اون رو نمیدونست کالسکر رو روشن کنه کالسکر رو مستقیما به تالار بزرگ برج آوردند و شاهزاده خانم همراه با خدمتکار وفادارش اگلانتین و ندیمش سریسته که اون هم عاشق عکس شاهزاده شده بود و شدیداً به خانم خودش حسادت می‌کرد سوار اون شدند شعرو من صندلی کالسکه توسط مادر سریست اشغال شد که به دستور ملکه برای مواظبت از این سه دختر جوان فرستاده شده بود. پری چشم مادرخوانده شاهزاده خانم نرا، نامزد سابق شاهزاده بود که بعد از دیدن عکس دزیر اون رو بیوفا کرده بود. این پری از توهینی که به فرزند خانده شده بود بسیار خشمگین بود و از همون موقع شاهزاده خانم رو میپایید. اون در این سفر فرصت رو مناسب دید و به صورتی نامرعی کنار سریسته نشست و افکار بدی رو به فکر اون و مادرش انداخت جاده که به شهر شاهزاده میرفت از بین جنگل انبوهی میگذشت و هر شب که ماه و حتی ستارهای از لابلای درختان دیده نمیشد محافظانی که همراه خانم سفر میکردند در کالسکر رو باز میکردند تا هوای داخل اون تهویه بشه این وضعیت چند روز ادامه داشت تا اینکه فقط دوازده ساعت تا رسیدن به قصر شاهزاده باقی موند سریسته مادرش رو تشویق کرد تا با چاقوی تیزی که برای همین منظور با خودش آورده بود، سوراخ بزرگی در بدن این کالسکی ایجاد کنه. در جنگل، تاریکی چنان حک فرما بود که هیچ کس متوجه کاری که اون کرده بود نشد. اما وقتی که آخرین درخت رو پشت سر گذاشتن و وارد محیط باز شدن، خورشید بالا اومده بود و دزیره برای اولین بار از زمان تولدش در معرض نور خورشید قرار گرفت اون حیرت زده به نور ای که از سوراخ به درون نفوز میکرد نگاه کرد بعد آهی از تی کشید در کالسکه به گونهای سحرامیز باز شد و غذال سپیدی از اون بیرون جهید و در یک لحظه در جنگل ناپدید شد اما با اینکه خیلی سری میرفت خدمتکارش اگلانتین فرصت پیدا کرد تا رد اون رو بگیره اون هم به دنبال اون از کالسکه بیرون پرید و محافظان هم در فاصله دورتر اونها را دنبال کردند سریسته و مادرش با حیرت و شادمانی به همدیگه نگاه کردند. اونها به سختی میتونستن اقبال خوب خودشون رو باور کنن چون همه چیز دقیقاً مطابق میل اونها اتفاق افتاده بود. اولین کاری که باید انجام میدادن پوشوندن سوراخ بود و وقتی که از انجام این کار البته با کمک پری خشمگین فارغ شدن با اینکه چیزی در این باره نمیدونستان، سریسته خیلی فلیساری لباس‌هاشو در آورد و لباس های شاهزاده خانم رو پوشید و تاج الماس نشان رو بر سرش نهاد. تاج تر از اون بود که انتظارش رو داشت، اما این به این دلیل بود که اون هرگز تاجی بر سر نگذاشته بود و به این کار عادت نداشت. در دروازه شهر، گارد احترامی که پادشاه برای همراهی عروس پسرش فرستاده بود، رو متوقف کرد. اگرچه سریسه و مادرش نمیتونستن چیزی رو که در بیرون جریان داشت ببینن، اما خیلی آشکار فریادهای خوشامدگوی جمعیت رو در امتداد خیابانها میشنیدند که در تالار وسیعی که بکاسیک برای استقبال از شهزاد خانم آماده کرده بود متوقف شد وزیر اعظم و مباشر منتظر اون بودند وقتی عروس قلابی پا به اتاق نورانی گذاشت همه اونها تنظیم کردند و گفتند که دستور دارند شاهزاده را از ورود اون آگاه کنند شاهزاده که آداب سخت دربار مانع از حضورش در تالار زیرزمینی شده بود در اتاقش بدون صبر و قرار انتظار میکشید اون کمانی رو که وانمود میکرد در حال تعمیر اونه به زمین گذاشت و فریاد زد پس اون اومده خب آیا حق با من نبود آیا اون معجزه زیبایی و رعنایی نیست آیا مثل اون در تمام عالم وجود داره وزیران به همدیگه نگاه کردند و جوابی ندادند تا اینکه بالاخره وزیر اعظم که جسورتر از دیگری بود جواب داد سرورم در مورد زیبایی اون شما خودتون میتونید قضاوت کنید شکی نیست که به همون زیبایی که شما میگید اما در حال حاضر به نظر میرسه قدری تغییر کرده که این هم به دلیل خستگی ناشی از سفر طبیعیه یقینا این پاسخ مورد نظر شاهزاده نبود اما آیا ممکن بود در نقاشی شاهزاده خانم اغراق شده باشه؟ اون قبلا چیزهایی در این مورد شنیده بود و عرق سردی بر تنش نشست اما در حالی که سعی میکرد سؤال دیگری نپرسه و خاموش باشه فقط گفت آیا پادشا از حضور شاهزاده خانم باخبر شدند درباریان گفتند بله آلی جناب احتمالاً ایشون تا به حال پیش ایشون رفتن. شاهزاده گفت پس من هم خواهم رفت شاهزاده در حالی که به خاطر بیماری طولانی مدت خودش ضعیف شده بود همراه وزیران از پلکان پایین رفت درست در موقعی که وارد اتاق شد صدای فریاد بلند پدرش رو که ناشی از هیجرت و نفرت اون از دیدن سریسته بود شنید پادشا گفت خیانتی در کار بوده در همین موقع شاهزاده که از وحشت زبانش بند اومده بود به در تکه داد اما ندیمه که برای چنین پیشامدی آمادگی داشت جلو رفت و در دستش نامه‌هایی رو که پادشا و ملکه بهش سپرده بودن گرفته بود اون در حالی که تظاهر می‌کرد حرف‌های پادشا رو نشنیده گفت این شاهزاده خانم دزیر است من افتخار دارم نامه های سرورم و بانویم را همراه با صندوقچه جواهرات شاهزاده خانم تقدیم شما کنم. پادشاه حرکتی نکرد و پاسخی هم بهش نداد به همین خاطر شاهزاده که به بازوی بکاسیک کاسیک داده بود قدری به شاهزاده خانم قلابی نزدیکتر شد و امیدوار بود که چشمهاش فریبش داده باشند اما هرچی بیشتر نگاه کرد بیشتر با پدرش هم عقیده شد که خیانتی اتفاق افتاده چون اون تصویر از هیچ نظر شباهتی به زنه که مقابلش بود نداشت سریسته به قدری قد بلند بود که پیراهن شاهزاده خانم به مُچ نمی نمیرسید و اونقدر لاغر بود که استخونش بیرون زده بود علاوه بر این بینیش عقابی و دندونهاش هم سیاه و زشت بود شاهزاده به نوبه خودش بر جای میخوب شد بالاخره به صدا در اومد و حرفاش خطاب به پدرش بود و نه عروسی که از دوردست برای عروسی با اون اومده بود او گفت ما فریب خوردیم و این به بهای جان من تموم میشه شاهزاده چنان به سنگینهای به فرستاده تکی کرد که بکاسیک ترسید که ضعف کنه و با عجل اون رو روی زمین نشوند تا چند دقیقه تمام نگاهها متوجه شاهزاده شد اما به محض اینکه حالش جا اومد ندیمه شروع به صحبت کرد و فریاد زد شاهزاده خانم نازنینم چرا ما سرزمینمون رو ترک کردیم اما پدرتون پادشاه وقتی که بهش بگیم با شما چه رفتاری کردن انتقام این تو اینها رو خواهد گرفت. پادشاه خشمگین جواب داد من خودم بهش میگم اون به من قول دختری زیبا رو داد اما حالا برای من که اسکلت فرستاده از اینکه 15 سال این دختر رو از چشم عالم آدم پنهان نگه داشته تعجب نمی کنم. بعد در حالی که رو به محافظانش میکرد ادامه داد این دو نفر رو از اینجا ببرید و در زندان حکومتی بندازید باید بیشتر از این موضوع سردر بیارم اوامر پادشاه اجرا شد و شاهزاده رو که با صدای بلند از سرنوشت شوم خودش می به بسترش هدایت کردند. اون چند روز در حالی که تب شدیدی داشت بستری شد بالاخره کم کم قدرت خودش رو پیدا کرد، اما اندوهش هنوز به قدری زیاد بود که تحمل دیدن چهرهای غریبه رو نداشت و از تصور انجام نقش خودش در مراسم رسمی به لرزه می افتاد. اون بدون اطلاع پادشاه یا هر کسی دیگری تصمیم گرفته بود که به محض بازیافتن توان خودش فرار کنه و بقیه عمرش رو به تنهایی در مکانی دور افتاده سپری کنه و فقط بکاسیک رو در جریان ام قرار داده بود. این نقشه رو بعد از چند هفته که سلامتی رو به قدر کافی پیدا کرد، عملی کرد. سرانجام، یک شب محتابی زیبا دو دوست فرار کردند و وقتی که صبح زود پادشاه از خواب شد، نامهای رو در کنار به سرش دید که نشانه رفتن پسرش به جایی ناشناخته بود. پادشاه با خوندن این خبر به تلخی گریه کرد چون اون شاهزاده رو خیلی دوست داشت اما احساس کرد که شاید مرد جوان کار ای کرده باشه اون به گذشت زمان و نفوذ بکاسیک امیدوار شد تا به کمک این عوامل جوان سرگردان به خونه برگرده در زمانی که این اتفاقها میافتاد غذاله سپید در چه حال بود اگرچه وقتی که از کالسکه بیرون پرید میدونست که واقعی شومی اون رو به یک حیوان تبدیل کرده اما تا زمانی که خودش رو در جویبار ندیده بود، تصوری در این مورد نداشت. اون در حالی که گریه میکرد به خودش گفت آیا واقعا این من هستم؟ همون دزیره؟ کدوم پری بر جنسی میتونه چون این رفتاری با من کرده باشه؟ آیا دوباره به شکل واقعین برمیگردم؟ تنها مایه تسلی من اینه که در این جنگل بزرگ که پر از شیر و ماره عمرم کوتاه خواهد بود. پریلاله به قدری از سرنوشت غ منگیز شاهزاده خانم ناراحت شد که اگر مادر دزیر هم از این جریان باخبر بود به همین میزان غصدار میشد. با این حال نمیتونست این فکر رو از سرش بیرون کنه که اگر پادشاه و ملکه به توصیه اون گوش کرده بودن حالا دختر سعیح و سالم توی خونه خودش بود. به هر حال، اون به قدری دزیر رو دوست داشت که نمیتونست اون رو به حال خودش رها کنه. به همین دلیل اگلانتین رو به محلی که قزال سفید ایستاده بود و داشت علف میخورد راهنمایی کرد این موجود زیبا با شنیدن صدای پاسرش رو بلند کرد و با مشاهده همراه وفادارش که بهش نزدیک میشد، به سمت اون جست و خیز کرد و سرش رو به شونه اگلانتین مالید خدمتکار متعجب شد اما اون حیوانات رو دوست داشت و با ملاتفت عزال سفید رو نوازش کرد و مدتی به نرمی باش حرف زد یک دفعه موجود زیبا سرش رو بلند کرد و به چهره اگلانتین نگاه کرد و اشک از چشماش جاری شد. فکری در ذهن دختر جرق زد و به سرعت برق به زانو افتاد و در حالی که پاهای حیوان رو بلند میکرد، اونها رو یکی یکی بوسید. اگلانتین داد زد، شاهزاد خانم من، شاهزاد خانم نازنینم. دوباره، غذال سفید سرش رو به سر اون مالید. چون اگرچه پری کینتوز قدرت تکلم رو ازش گرفته بود. اما عقل و هوشش از بین نرفته بود. اون دو تمام روز رو با هم گذروندن. وقتی که اگلانتین گرسنه شد، قزال سفید اون رو به بخشی از جنگل برد که درختان گلابی و هلو در اونجا وجود داشت. اما با فرارستن شب، خدمتکار از حیوانات وحشی که شاهزاده خانم رو در شب اول در جنگل محاصره کرده بودند وحشت کرد. اون پرسید: "آیا اینجا کلبه یا قاری وجود نداره که به داخل اون بریم؟" اما قزال فقط سر شوتکون داد. اون دو تا نشستن و از ترس گریه کردن پریلاله که با وجود خشم خودش بسیار مهربان بود از رنج اونها ناراحت شد و به سرعت به یاری اونها رفت اون گفت من نمیتونم تلس رو کاملا باطل کنم چون پری چشمه از من قوی تره اما میتونم مدت مجازات تو رو کوتاهتر کنم و از دشواری اون کم کنم چون به محض فراررسن تاریکی تو به شکل واقعی خودت در میای. برای دزیره تصور اینکه همیشه قزال سفید نخواهد موند و شبها به شکل واقعی خودش در میاد به قدر کافی شادی بخش بود و اون با شادی شروع به جستخیز روی لف کرد. پری در حالی که بهش نگاه میکرد و لبخند میزد ادامه داد همین جاده رو که در پیش رو بگیر و برو خیلی زود به کلبه کوچکی میرسی که میتونی در اونجا پناه بگیری با گفتن این کلمات پری ناپدید شد در حالی که مخاطبانش رو بسیار شاد کرده بود وقتی که اگلانتین همراه با قزال سفید که در کنار اون راه میرفت به کل به نزدیک شدن پیرزنی رو که در درگاه ایستاده بود دیدند اگلانتین گفت شب بخیر آیا ممکنه جایی برای من و قزالم امشب بهمون بدید پیرزن جواب داد حتماً. اون اونها رو به اتاقی که دو تختخواب کوچک سفید در اون قرار داشت برد اتاق به قدری تمیز و راحت بود که حتی مشاهده اون آدم رو به حواس خابیدان مینداخت به محض بسته شدن در اتاق پشت سر پیرزن خورشید در افق غروب کرد و دزیره دوباره به شکل یک دختر در اومد. اون فریاد زد آه اگلانتین اگه تو دنبالم نیومده بودی چه کار باید کردم. دزیره از شادی خودش را در آغوش دوستش انداخت صبح اول وقت اگلانتین با صدای خراشیده شدن پنجهی بر روی در از خواب بیدار شد و به محض باز کردن چشماش دید که عزال سفید برای خارج شدن تقلا میکنه موقعی که خدمتکار کلون در رو باز می کرد اون موجود کوچک به چهره اون نگاه کرد و سرش رو تکون داد اما بعد وارد جنگل شد و در یک لحظه از دیدره از دور شد در این موقع شاهزاده و بکاسیک در جنگل سرگردان بودند تا اینکه بالاخره شاهزاده به قدری خسته شد که زیر درختی دراز کشید و به بکاسیک گفت که بهتره به دنبال غذا و جای برای خوابیدن بره هنوز بکاسیک خیلی دور نشده بود که در پیچ جاده با پیرزنی که در مقابل کلبش سرگرم قضا دادن به کبوترهاش بود روبرو شد. بکاسیک پرسید آیا میتونی قدری شیر رو میوه به من بدی؟ من بسیار گرست نم و به علاوه دوستی همراه منه که هنوز به خاطر بیماری ضعیفه. پیرزن جواب داد حتماً اما تا من بزر رو میدوشم بیا و در آشپسخونم بنشین بکاسیک با کمال میل این کارو کرد و طی چند دقیقه پیرزن با سبدی پر از میوه سر رسید و گفت اگر دوستت بیماره نباید شب رو در جنگل بگذرونید من اتاقی در کلبم دارم که اگرچه کوچیکه اما بودنش بهتر از نبودنشه من هر دوی شما رو با کمال میل در اونجا جای میدم bekas از پیرزن تشکر کرد و از اونجایی که تقریبا زمان غروب آفتاب بود رفت تا شاهزاده رو با خودش بیاره در غیاب اگلانتین و غذال سفید وارد کلبه شدند. البته اصلا تصورش رو هم نمیکردن که در اتاق بغلی مردیه که بی صبری کودکانش موجب تمام دردسرهای اونها شده شاهزاده با وجود خستگی به سختی خوابید به محزه روشن شدن هوا از جا بلند شد و به بکاسی گفت در جای خودت بمون و از اونجایی که دلش میخواست تنها باشه به جنگل رفت اون خودش رو به دست خیالش سپرده بود و به آرامی قدم میزد تا اینکه ناگهان به محل وسیعی رسید که در وسط اون قزال سفیدی به آرامی مشغول چرا بود. قزال با مشاهده اون مرد به عقب پرید ولی شاهزاده که بدون فکر چند تیر از کمانش به سمت اون پرتاب کرده بود از جای خودش تکون نخورد. پری لاله مراقبت کرد که اون تیرها آسیبی بهش نرسونه اما قزال که به سرعت می‌دوید احساس کرد که قدرتش رو به پایانه. آخه 15 سال زندگی در برج به اون ورزش دادن دست و پاش رو یاد نداده بود. خوشبختانه شاهزاده زئیتر از اون بود که تعقیبش کنه. بالاخره قزال به نزدیکی کلبه که اگلانتین منتظرش بود رسید. قزال که نفس نفس میزد وارد اتاقشون شد و خودش رو بر زمین انداخت. وقتی که دوباره هوا تاریک شد و باری دیگه اون همون شاهزاده خانم دزیره شد، ماجرایی رو که براش اتفاق افتاده بود برای اگلانتین تعریف کرد. دزیره گفت: من از پری چشمه جانوران وحشی می‌ترسیدم. اما هرگز به فکر خطری که از جانب آدمیزاد تهدیدم میکنه نبودم نمیدونم چه چی چیزی نجاتم داد اگلانتین جواب داد باید تا زمان پایان مجازاتت بی سر و صدا اینجا باقی بمونی اما وقتی که صبح شد دختر به شکل قزال در اومد و هوس گردش در جنگل به سرش زد و مثل قبل بیرون رفت شاهزاده به محض بیدار شدن از خواب با عجله به محلی که روز قبل قزال سفید رو در حال غذا خوردن دیده بود رفت اما البته غذال به نقطی دیگری رفته بود. اون با ناامیدی اول از یک جاده و بعد از جادهی سرسبز دیگری گذشت و بالاخره خسته از راه رفتن خودش رو بر زمین انداخت و به خواب رفت. درست در همین موقع غذال سفید از پشت بوته‌ای که در اون نزدیکی بود بیرون پرید و با دیدن دشمنش که اونجا خوابیده بود، ترسان و لرزان عقب عقب رفت. اما به جای فرار کردن، چیزی به غزال میگفت که جلو بره و اون مرد رو ببینه. همونطور که بهش خیره شده بود شور و شوقی در وجودش راه پیدا کرد چون احساس کرد که اگرچه این مرد در اثر بیماری ضعیف و رنجور شده اما چهرش نشون میداد که همون کسی که قرار بود همسرش باشه غذال به آرامی به شاهزاده نزدیک شد و پیشانیش رو بوسید اون از اون بوسه بیدار شد اونها لحظهای به همدیگه نگاه کردند شاهزاده با کمال تعجب فهمید که این همون غذال سفیدی که روز قبل از دستش فرار کرده بود اما در یک لحظه حیوان احساس خطر کرد و با تمام قدرت به انبوه ترین قسمت جنگل فرار کرد. شاهزاده به سرعت رد حیوان رو گرفت اما این بار دیگه نمیخواست این موجود زیبا رو بکشه یا حتی زخم کنه. اون فریاد زد: "قزال زیبا، قزال سیبا، صبر کن، من بهت آسیبی نمیرسونم." اما صداش در باد گم شد. بالاخره قزال دیگه نتونست بیشتر جلو بره و وقتی که شاهزاده بهش رسید، روی علفها افتاد و منتظر مرگ خودش موند. اما در عوض شاهزاده کنار اون زانو زد، نوازشش کرد و بهش گفت از چیزی نترسه چون خودش از غذال مراقبت خواهد کرد و همین خاطر مقداری آب در فنجان شکارش از نهر آورد، بعد چند شاخه از درختان برید و از اونها تخت روانی ساخت و آن رو با خزه پوشند و غذال سفید رو به آرامی روی اونها گذاشت، اونها مدت زمانی طولانی به همون حال باقی موندند. اما وقتی که دزیره متوجه شد که غروب آفتاب نزدیک به خودش اومد تا ما بادا هوا تاریک بشه و شاهزاده اون رو به شکل واقعیش ببینه، شاهزاده خانم به خودش بکرد: نه، اون اولین بار نباید منو اینجا ببینه. فورا تصمیم گرفت از دستش خلاص بشه. بعد دهنش رو باز کرد و زبونش رو بیرون آورد انگار که از شدت تشنگی داره تلف میشه. شاهزاده همونطور که انتظارش به طرف نهر رفت تا براش قدری آب بیاره. وقتی که برگشت غزال سفید رفته بود اون شب دزیره پیش ایگلانتین اعتراف کرد که مردی که تعقیبش میکرد کسی جز شاهزاده نبود و اینکه شاهزاده از تصورش خیلی بهتر و رعناتر بود دزیره گریهکنان گفت آیا در داور نیست که وقتی که ما یکدیگر رو اینقدر دوست داریم به این شکل باهاش ملاقات کنم اما ایگلانتین رو دلداری داد و بهش یادآوری کرد که به زودی همه چیز تموم میشه شاهزاده از فرار غذا سفید که اون همه براش به دردسر افتاده بود خیلی عصبانی شد و وقتی که به کلب برگشت داستانش رو برگی به تعریف کرد و خشم رو سر اون که نمیتونش جلوی خنداش رو بگیر خالی کرد. شاهزاده داد زد اون دیگه از دست من فرار نخواهد کرد حتی اگه یک سال هم به دنبالش برم عاقبت مال من میشه. با این فکر شاهزاده به رخت خواب رفت. وقتی که صبح روز بعد غذال سفید وارد جنگل شد، هنوز تصمیم نگرفته بود که آیا پیش شاهزاده بره و یا از دستش فرار کنه و در بین بیشه هایی که اون از اونها بیخبر بود مخفی شد. اون بیند چه رسید که نقشه آخر بهتره. اگه شاهزاده همون مسیر رو در جستجوی اون دنبال نکرده بود، اینچنین هم هم میشد. شاهزاده کاملا بر حسب تصادف چشمش به پوست سفید حیوان که در بین بوته‌ها میدرخشید افتاد و همزمان قزال صدای شکسته شدن شاخه‌ها رو در زیر پای شاهزاده شنید. در یک لحظه از جا پرید و فرار کرد ولی شاهزاده که برای اسیر کردن غذا راه دیگری جز انداختن تیری به پای اون نمیدونست حیوان رو بر زمین انداخت مرد جوان در حالی که به سوی محلی که غذال سفید افتاده بود میرفت احساس گناه میکرد و نهایت سعی خودش رو کرد تا درد حیوان را تسکین بده و در واقع این آخرین بخش مجازاتی بود که پری پریچشمه برای اون در نظر گرفته بود اول شاهزاده قدری آب برای غذال ورد بعد مقداری از علفهای شفابخش آورد اونها رو در دستش خورد کرد و روی زخم نهاد اون در حالی که سر غذار رو روی زانوهاش گرفته بود داد زد من چقدر پست هستم که به تو آسیب رسوندم حالا از من متنفر میشی و برای همیشه از من فرار میکنه. قضا لحظهی به همون حالت باقی موند اما مثل دفعه قبل به یاد برد که زمان تغییر شکلش نزدیک میشه. اون تقلا کرد که روی پاهاش بیسته اما شاهزاده توجهی نکرد و از اونجایی که فکر میکرد پیر زن بهتر از اون میتونه زخم حیوان رو درمان کنه قضا رو در آغوش گرفت تا به کلبه ببره. اما قزال با وجود کوچیکی چنان خودش را سنگین کرد که شاهزاده بعد از چند قدم تلو تلو خورد. اون رو روی زمین گذاشت و محکم با ربان کلاهش به درختی بست. بعد برای درخواست کمک رفت. در همین موقع اگلانتین از غیبت طولانی بانوش نگران شده بود و از به خارج شد تا به جستجوی اون بره همین که شاهزاده از دور دیده شد چشم اگلانتین به روبان ها افتاد که در حال تکون خوردن بودند و شاهزاده خانم سیبایی خودش رو دید که به درختی بسته شده اون با تمام قدرتش سعی کرد ها رو باز کنه اما اگرچه کار آسانی به نظر می رسید حتی یک گره هم باز نشد اون هنوز سرگرم این کار بود که صدایی از پشت سرش گفت بانوی زیبا منو ببخشید اما این قزل منه که دارید میدوزید اگلانتین که از نگاه کردن به شاهزاده پرهیز میکرد جواب داد منو ببخشید شوالیه نیکو اما این قزل منه که اینجا بسته شده اگر مدرکی میخواید میتونید ببینید که آیا اون منو میشناسه یا خیر بعد زانو زد و ادامه داد کوچولوی من قلب منو لمس کن غذال پنجهای جلویی خودش رو بلند کرد و اون رو به پهلوی اگلانتین زد حالا دستات رو دور گردنم بزار دوباره قزال کاری رو که اگلانتین بهش گفته بود انجام داد. شاهزاده گفت: حق با شماست اما با کمال تأسف اون رو به شما پس میدم چون اگرچه بسیار دوستش دارم اما اون رو زخمی کردم. اگلانتین جوابی نداد، فقط به دقت قزال رو بلند کرد و به آرامی به داخل کلبه هدایت کرد. شاهزاده و بکاسیک بیخبر بودند که پیرزن مهمان دیگری به غیر از اون دو داره. و در حالی که از دور نگاه می از مشاهدی اگلانتین و همراهش که وارد کلبه می بسیار تعجب کردند. اونها بیمعتلی از پیرزن پرسجو کردند و اون جواب داد که چیزی در مورد اون خانوم و قزال سفیدش که اتاق مجاور اتاق شاهزاده و دوستش هستن نمی اما فقط این رو می دونه که اونها ساکت و بیازارن و پول خوبی هم می دن. بعد پیرزن به آشپزخونهش برگشت وقتی که بگازیک با شهزادی تنها شدن بهش گفت میدونید من مطمئنم که خانومی رو که دیدیم ندیمه شاهزاده خانم دزیره است که من در قص ملاقات کردم از اونجایی که اتاق اون مجاور اتاق ماست میتونیم به سوراخ کوچیکی توی دیوار ایجاد کنیم تا من بفهمم حق با من بوده یا نه به این ترتیب اون چاقوی از جیبش بیرون آورد و شروع به سوراخ کردن دیوار چوبی کرد دخترها صدای خشخشی رو شنیدن اما چون تصور میکردند که صدای موشه توجهی نکردند بکاستیک تونست به آسانی کار خودش رو ادامه بده بالاخره سوراخ به اندازه کافی که اون بتونه از لای اون نگاه بکنه باز شد و اون صحنهای رو دید که غرق در حیرت و تعجب شد حدس اون درست بود زن بلند قد اگلانتین بود اما دیگری رو کجا دیده بود آها حالا میفهمید اون همون بانوی اون تصویر بود دزیره که لباسی از جنس ابریشم سبز رنگ داشت روی پشتی ها دراز کشیده بود و به اگلانتین که سرگرم شست پای مجروح اون بود گفت آخ بزار به جای ادامه دادن به این زندگی بمیرم نمیدونی چقدر دردناکه که تمام مدت روز رو حیران باشی و نتونی با مردی که دوستش داری و بی اون باعث این سرنوشت غمبار شده حرف بزنی با این حال حتی نمیتونم ازش متنفر باشم. این کلمات اگرچه آهسته بیان شد اما به گوش بکاستی که اصلا نمیتونست اونها رو باور کنه رسید. اون لحظه خاموش موند. بعد به طرف شاهزاده که از پنجره بیرون رو نگاه میکرد رفت. بازوش رو گرفت و به سمت سوراخ آورد. تنها یک نظر کافی بود تا شاهزاده دزیره رو بشناسه. چطور شده بود که دیگه در زمان مدهوشی شاهزاده با نام دزیره به قصر اومده بود؟ شاهزاده پاورچین پاورچین از اتاق بیرون رفت و در اتاق مجاور رو به صدا در آورد که فکر می‌کرد پیرزن شامشون رو اوورده در رو باز کرد اون با دیدن شاهزاده که این بار اون هم اون رو شناخته بود عقب عقب رفت اما شاهزاده اون رو کنار زد خود رو به پای دزیره انداخت و قلبش رو بهش تقدیم کرد اونها تا سپیده دم صحبت کردند و خورشید کاملا بالا اومده بود که شاهزاده خانو فهمید شکل انسانیش رو پیدا کرده اون از دونستن اینکه روزهای مجازاتش به پایان رسیده بسیار خوشحال شد و با صدایی شاد راز تلسمش رو برای شاهزاده گفت. به این ترتیب داستان عاقبت به خوبی خوشی تمام شد و پریلاله که همون پیرزن کلبه بود چنان جشن عروسی برای این زوج جوان برگزار کرد که هرگز تا به حال کسی به چشم ندیده بود. همه غیر از سریسته و مادرش خوشحال بودن. عاقبت اون دو نفر رو با قایقی به جزیرگی کوچیکی فرستادن که تا آخر عمرشون به سختی کار کنن قصه ما به سر رسید سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب رودخانه ها و برکه های جادوی قصر های و, و مهمانی های بزرگ شاهانه قصه هایی از سفر دور و دراز با پای پیاده سفر شاهزاده ها و شاهان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 ادساین مهران دوستی